هجامت کرده شود هست یک روش علاج هست هر رو نمیشه گفت سنت سنت یک روش علاج هست سنت اون از که همیشه باید عمل بکنید اما میشه گفت این روش روش اسلامی هست جائز روش علاجی هست که نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه انجام داده به اتباع از نبی کری ما معجور هستیم عجر میبری اتباع بکنیم اگر کسی هجامت نکل تو رحکار نمیشه روش علاجی هست اما این است که جبرائیل امین به تاکید میکرده هجامت نبی بکرر اسلام در مورد هجامت تاکید فرمودند که شفار الله رب العالمین در سه چیز گذاشته شربت و عسلین و قیجت و نار و مهجم اومده هجامت خیرنو شفارو نبی کریم بزارشتن یا اصل هست یا داغ هست یا حجامتن اما،, اما انها امتی عن الکی من امت را از داغ کردن نهمیون داغ نکنید خود نبی کریم داغ هم کردن حضرت انس و ابو داغ کرده داغ هم ثابته اما داغ کار هر کسی نیست بلی هر بیماری داغ نمی کرده. یعنی اینجا چونکه داغ محل سوزاندن هست و این سوزاندن آتشه این آتش مخصوص الله رب العالمین یک بندگانش رو عذاب ده زیاد گوه هزی استفاده نکنید اما اگر ثابت شد فقط بیماری در همین هست حالا علاجش با داغ داغ بکن کسی که ماهر باشه امروزی هم اتبای رسیدن که خیلی از بیماری ها با داغ بشن لیزر می زنن با بابر بکنه با اما داغ که بهتره خیلی از غده ها داغ خیلی مفید است خیلی مفید حالا چرا نبی کریم سه چیزو فرمودند یا شربت اصل یا که نجامت یا داغ کردن بیماری ها یا پوستیان یا خونیان یا میکروبان و ویروسان از این سه حال بیماری خالی نیست اگر خون باشه خون باشه پوستی باشه خیلی از گونه ها خون فاسد با از بدن بیرون بشه بیشه عمده بیماریها تو خونن اکثرشون و بهترین کارو هجامت میکونی این حجامت گرفتن اون خون فاصل از بدن خون فاصل وقتی گرفتید و خون دوباره تصفی میشه خون خوب میشه و از او میتونید که دوباره استفاده کنید حال یا مسئله بعدی اون میکروب ها ویروس ها داخل بدنند بهترین چیزی که ویروس از میبره میکروب پش هست این اصله اصل هرگز میکروب را رشد نمیده تحقیق کنید در اصل میکروب رشد نمیکنه کنید دهان پر از اصل بکن بخواب دندونا خراب نمیشن شیری نمیست میکروب از به میبره اما میکروب در اثر رشد نمیکنه، امکان نداره از... اما میر میکروب ها رو پس این یک چیزی داخل بدن وجود داره هم میکروب ها حالا ما نمی در تب وارده چون رشته ما نیست این چیز در احادیث اومده پس بنابراین این هم که در خود اصل حالا با اصل تورانی هست و بعد از اون داغ هست که برای خیلی از اونها داغ خوبه پس هجامت یک روش علاج اسلامی هست که برای خیلی از بیماری ها مفیده برای سردرده های مزمن هجامت خیلی خوبه برای پا دردها هجامت خیلی خوبه برای بیماری پوستی هم هجامت خیلی خوبه برای بیماری پوستی برای این هم خیلی خوبه هجامت روزهای فرد ماه قمری اما زمانی که ما از نصف رد شده باشه 13 هم 19 هم 21 هر ماه بهترین روزها هستند. چرا؟ چون خون در بدن مانند این جزرمد در دریاها هست اول ماه خون هیجانش خیلی که حالا ما در اول ماه قرار دارید، هیجان خیلی کم. هیجان خیلی که چون این ماه وجود انسان با عوامل کونی متاثر میشه. از این هوا متثر میشه، از خورشید متثر میشه، از ماه متأثیر میشه اینها در وجود انسان تأثیر گذارن. خون رو غیل میکنن خون رو غلیز میکنن جهش خون در بدن با اوامل بیرونی تأثیر گذار هست اینو قبول میکنی یا نکنی اما تو حدیث اومده دید این تأثیر و تأثیرت در اول ماه اول ماه قمری که ماه ماهی بانداری جهش خون خیلی پایینه کم باشه پس اون خون فاسد راحت نمیتونه بگیری. وسط ماه که ما در فضا هست این جهش بیشتر میشه وقتی بیشتر میشه باز هم شما دیگه اینجا اگر وزری اینجا مزر خون بیشتری از دست میدید اما بعد از نصف موخرات شد عالی میشه عالی عالی هست و خون فاسد راحت میتونه بدن تون دف اما ایا خون دادن هم خوبه نه بله خون دادن هم خوبه برای کمک به همنای خود انسانی کمک بخوای بکنی خون دادن که خیلی خوبه پس به هر حال هجامت جایز است و انجام بده الا شرط بعد این است که هجامت را روزهای چهارشنبه و سشنبه انجام ندهید. همه دیفت و نونز و انجام بده اما چهارشنبه و سشنبه نکن چهارشنبه چرا؟ چون که عموماً تو حدیث هم من اومده عمومن این هم بی... یاد بگیری عموماً بیماری هایی که بر دنیا فرود می آیند و انسان ها محترام می از اون چهارشنبه شروع میشه این بیماری که باید بیاین الله بیفرسته فرستن ها چهارشنبه بزنی میرسن حالا تحقیق هم بکنید ببینید بیماری های نادری شروع میشن بر اولین بار چهارشنبه میافته و چهارشنبه ظاهر میشه پس اونجا هم رگ نزنی که میکروب بر بدن در بدن وارد نشود واسه شنبه چی است روز سهشنبه یک لحظی در این روز وجود داره اگر موافق با همون لحظش مرگو زدی خون قطع نمیشه اینجا هم خطر هست این دو زمان نواشی روزه دیگه باشه اشکالی نداره پس هجام... نبی مکرر اسلام صلی الله علیه وسلم خودشون هجامت زده هست دوبار هجامت ثابت هست بیشتر همشه ثابت باشه هم با هجامت خود نبی کریم هجامت ثابته ابو طیبه نبی کریم را هجامت داد و بعد هم اجرت را داد مز دستموز حجام و داد پس اگر طبیبی معالجه کرد دستموزش را باید بدهی نبی کریم اینجا دستمز ابو تیبه را داد اما فرمودن که کسب الحجام خبیصون در این حجام بده خبیسه. یعنی پولی بخواسته نجا بگیری پول شغل خوبی نیست اما دادن نبی ده ده این جنابی که در تعلیم میده، این حقش موزش است، اما این شو شغل خوبی نیست. حالا بعض همیشه موقص اصفهان سرکاله دارا این زیاد خوب نیست، این آزمایشگاه میشه که صاحب آزمایش میکنند یک زیاد برای خیلیها، کد خوب باید میگیره بگیره، باید جانشون نیاز باشه. بیالحال نبی که در مورد حجام و چیز فرمان دیگری بیشتر داری مورد نمیگه، اما در مورد که کسب ول حجام که درامادی حجم فرمودن که بده خبیسه. اما خودشون دادن. یعنی حلال بگیر. مزته اما کار خوبی. این شغل شغل خوبی نیست. شغل های خوب انتخاب کنید.